اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده بخشایشگر کا ها یا عین صاد این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریه. نادى ربه نداء در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه عبادت پنهان خواند قال رب انني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن ولم اکن بدعائی گفته پروردگارا استخانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نبودم وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْلِي فهب مِنْ لَدُنْ كَوَلِيًّا و من از بستگانم بعد از خودم بین ناکم و از طرفی همسرم نازاب و عقیم است تو از نزد خود جانشینی به من ببخش یریثنی و يرث من آل و واجعله رب رضيا که وارث من و دودمان یعقوب باشد و او را مورد رضایت قرار ده یا زكريا، اینا نبشر که اسم اسمهو یحیالم نجعل له من قبل سمیه ای زكريا، ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیاست و پیش از این هم نامی برای او قرار ندادیم قال ربی ان لا يكون لي غلام وكان امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قلت پروردگارا چگونه برای من فرزندی خواهد بود در حالی که همسرم نازا و عقیم است و من نیز از شدت پیری افتاده شده ام قال كذلك قال ربك وعليها ينون وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فرمود انونه است پروردگارت گفته این بر من آسان است و قبلا تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی قال ربي جعل قَالَ آیَتُ كَأَلَّا تُكَلِّمَنَّا ثلاث فَلَيَالٍ سَوِیَا ارزگرد، پربردگارا، نشانه ای برای من قرار ده فرمود، نشانه تو این است که سه شبان روز قدرت تکلم با مردم نخواهی داشت در حالی که زبانت سالم است فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها گفت به شکرانه این موهبت صبح و شام خدا را تسبیح گویید یا يحيى خذل الكتاب بقوه و آتيناه الحکم صبیه ای یحیا کتاب خدا را با قوت بگیر و ما فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم وحنانا من لدنا و زکاة و و رحمت و محبتی از ناهیه خود به او بخشیدیم و پاکی دل و جان و او پرهیزگار بود و بر و لم او نسبت به پدر و مادرش نیکو کار بود و جبار و متکبر و اسیانگر نبود و سلام علیه یوم و یوم و یوم حیه سلام بر او آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد و آن روز که زنده برانگیخته می شود واذكر في الكتاب تبذت من اهلها و در این کتاب آسمانی مریم را یاد کن آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه شرقی بیت المقدس قرار گرفت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلیها روحنا فتمثل لها, فتمثل لها بشرا سویا و میان خود و آنان هجابی افکند تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد قالت انی اعوذ بالرحمن منك تقیا او سخت ترسید و گفت من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر پرهیزگاری قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما ذكیا گفت من فرستاده پروردگار تو أم آمدهام تا پسر پاكیزهای به تو ببخشم قالت أنا يكون لی غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بقیا گفت. چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که تا کنون با من تماس نداشته و زن آلوده ای هم نبوده هم قال کذارکی قال ربکی هو علیه هی ولنجعله آیتا للناس و منا و كان گفت مطلب همین است پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است ما او را می آفرینیم تا قدرت خیش را آشکار سازیم و او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم و رحمتی باشد از سوی ما و این است پایان یافته و جای گفتگو ندارد. فحملت مفنتبدت به مکانا قصيا سرانجام مریم به او باردار شد و او را به نقطه دور دستی برد و خلوت گزید. فاجاء اهل مخاض الى جذع نخلت والتي ليتني مت قبل هذا وكنت درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند آنقدر ناراحت شد که گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی فراموش می شدم ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که غمگین مباش پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی گوارا قرار داده و هزی إليك بجذع نخلتی ساقط علیک رطبا جنیا. و این تنه نخل را به طرف خود تکانده رطبه تازه ای بر تو فرو فکُلِ و شربِ و قرِ عینا، فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فقولی نذرت للرحمن صوما فلن الوم از این غذای لذیذ بخور و از آن آب گوارا بنوش و چشمت را به این مولود جدید روشن دار و هرگاه کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو من برای خداوند رحمان روزه ای نظر ام بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمیگویم و بدان که این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرده فأتت قومها تحمله. قالوا یا مریم لقد جئت در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد گفتند ای مریم کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی یا اخته هارون ما کان ابوکم راءسو و ما کانت اموک ای خاهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاری فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا مریم به او اشاره کرد گفتند چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگویین قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت من بنده خدایم او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصانی بالصلاة و ما دمت حیا و مرا هر جا که باشم وجودی پر برکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات توصیه کرده است. و درون ولم و, و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است. و السلام علي يوم ولدت و يوم آموت و يوم أبعث حيا و السلام خدا بر من در آن روز که متولد شدم و در آن روز که می و در آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد. ذلك عیسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون این است عیسی پسر مریم گفتار حقی که در آن تردید می کنند. ما کان لله این یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امران فا انما یقول لهم کن هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند منزه است او هرگاه چیزی را فرمان دهد میگوید موجود باش همان دم موجود میشود و این الله ربی و فاعبدوه هذا صراط مستقیم و خداوند پروردگار من و پروردگار شماست او را پرستش کنید این است راه راست فاختلف الاحزاب من بينهم، فویل للذين كفروا من مشهد یوم عظیم ولی بعد از او گروههایی از میان پیربانش اختلاف کردند وای به حال کافران از مشاهده روز بزرگ رستاخیز اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا لکن یظالمون اليوم فی ضلال مبین در آن روز که نزد ما می آیند چه گوشهای شنوا و چه های بینایی پیدا می‌کنند ولی این ستمگران امروز در گمراهی آشکارند و انذرهم يوم الحسره اذ قضی الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. آنان را از روز حسرت روز رستاخیز که برای همه ما جای تاسف است بترسان در آن هنگام که همه چیز پایان می‌یابد و آنها در غفلتند و ایمان نمیآورند. إنا نحن نرث الأرض ومن علیها وإلینا یرجعون ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند واذكر فی الكتاب ابراهیم نه كان صدیقا نبیا در این کتاب ابراهیم را یاد کن که او بسیار راستگو و پیامبر خدا بود. اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن هنگامی که به پدرش گفت ای پدر چرا چیزی را میپرستی که نه میشنود و نه میبیند؟ و نه هیچ مشکلی را استوار میکند یا اباتي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا ای پدر دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است بنابر این از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم یا عبتی لا تعبود الشیطان این الشیطان کان لرحمان عصیه ای پدر شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان اسیانگر بود یا عبتی اني اخاف این يمسك عذاب من الرحمن فتكون فتكون للشيطان وليا ای پدر من از این میترسم كه که از سوی خداوند رحمان عذابی به در نتیجه از دوستان شیطان باشی. قال ارغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا قلت اي ای ابراهيم ايا تو از معبودهای من روی گردانی اگر از این کار دست بر نداری تو را سنگسار میکنم و برای مدتی طولانی از من دور شو قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ابراهيم گفت سلام بر تو من به زودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو میکنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است و اعتزلکم و تدعون من دون الله و ادعو ربی عسا الا اكون بدعاء ربی شقیه و از شما و آنچه غیر خدا می خانید کنار گیری و پروردگارم را میخوانم و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم فلن معتز لهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اصحاق و یعقوب جعلنا نبیه انگامی که از آنان و آن غیر خدا می پرستیدند کنار گیری کرد ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیام بزرگ قرار دادیم و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیه و زحمت خود به آنان اتا کردیم و برای آنها نام نیک و مقام برجسته ای در میان همه امتها قرار دادیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا. و در این کتاب آسمانی از موسی یاد کن که او مخلص بود و رسول و پیامبری والا مقام و من او از جانب طور الایمن و نجیا ما او را از طرف راست کوه تور فراخندیم و نجوا کنن او را به خود نزدیک ساختیم و وهبنا له من اخاه هارون و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیام بر بود به او بخشیدیم واذکر في الكتاب اسماعیل، این كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. و در این کتاب آسمانی از اسماعیل نیز یاد کن که او در وعده هایش صادق و رسول و پیامبری بزرگ بود و كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة و عند ربه مرضیه او همواره خانواد اشرا به نماز و زکاة فرمان می داده و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. و اذکر الكتاب ادریس و در این کتاب از ادریس نیز یاد او بسیار راستگو و پیامبر بزرگی بود. و رفعناه مکان العالیه و ما او را به مقام والایی رسانیم. أولئک الذين انعم الله عليهم من من ذرية آدم آدَمَ من ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا آنها پیام برانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده میشد. به خاک می افتادند در حالی که سجده می کردند و گریان بودند خلف من بعدهم خلف واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اما پس از آنان فرزندان ناشایست ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. اِنَّمَا التَّابُونَ وَالآمِنُونَ وَالْعَامِلُونَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الجنت ولا يظلمون شيئا مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند. چون این کسانی داخل بهشت می شوند. و کمترین ستمی به آنان نخواهد شد. جنات علیلن الرحمن و بالغیب. اینه وعده وارد ضباغ خای جاودانی میشوند که خداوند رحمان بندگانش را به آن وعده داده است هرچند آن را ندیدند مسلما وعده خدا تحقق یافته است لا فيها لغوا ولهم رزقهم فيها و وعشيا در آنجا هرگز گفتار لغو و بیهودهی نمی‌شنوند و جز سلام در آنجا سخنی نیست و هر صبح و شام روزی آنان در بهشت مقرر است تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا این همان بهشتیست است که به بندگان پرهیزگار خود به ارز میدهیم می‌دهیم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا پس از تأخیر وحی جبرئیل به پیامبر عرض کرد ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمیشویم. آنچه پیش روی ما و پشت سر ما و آنچه میان این دومی باشد همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده و نیست رب السماوات والارض و ما بینه ما فعبده و استقبر لعبادته هل تعلم له همان پروردگار آسمان و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد او را پرستش کن و در راه عبادتش شکی باش آیا مثل و مانندی برای او میابی؟ و یقول الانسان اذا ما مدت لسوف حیه انسان می آیا پس از مردن زنده از قبر بیرون آورده می شدم؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل و لم یک آیا انسان به خاطر نمی آورد؟ که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود ثورا ربک لنحشرنهم والشياطين ثم, ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جنة مجثيه سوگند بپروردگارت که همه آنها را همراه با شیاطین در قیامت جمع می کنیم. سپس همه را در حالی که به زانو در آمده اند گرد جهنم حاضر می سازیم ثم من كل اشد سپس از هر گروه و جمعیتی کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکشتر بوده اند جدا می کنیم بعد آن ما به خوبی از کسانی که برای سوختن در آتش فزابار ترند آگاه ترین. و این منكم إلا کم ایلا واردها کان علی ربک حتما بقضیا. و همه شما بدون استثناء وارد جهنم میشوید این امری است حتمی و قطعی بر پرداخت و سپس آنها را که تقوا پیش کردند از آن رهایی میبخشیم و ظالمان را در حالی که از ضعف و ذلت به زانو در آمده اند در آن رها می‌ساپیم وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير بقاما واحسن لديا و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود کافران به مؤمنان میگویند کدام یک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر و جلسات انس و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اثاثا و چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها بهتر بود وهم ظاهرشان آراسته تارا. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما يوعدون انما العذاب وان الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا کسی که در گمراهی است باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند یا عذاب این دنیا یا عذاب قیامت آن روز خواهند دانست چه کسی جایش بدتر و لشکرش ناتوانتر است و الله الذین اهتدوا و هده الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان می افضاید و آثار شایستهی که از انسان باقی می ماند سوابش در پیشگاه پروردگارت بهتر و عاقبتش خوبتر است. ارا ایتالذی کثر بایاتنا و لا اوتین لما وولدا آیا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد و گفت اموال و فرزندان فراوانی به من داده خواهد شد اطلع الغیب أم اتخذ عند الرحمن عهدا آیا او از غیب آگاه گشته یا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است كلا سنكتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا هرگز چنین نیست ما بهزودی آنچه را میگوید مینویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت و ما یقول و یأتینا فردا هنچرا او میگوید از اموال و فرزندان از او به ارز میبریم و به صورت تنها نزد ما خواهد آمد و اتخذو من دون الله آلیهت لیکونو لهم عزا و آنان غیر از خدا معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان باشد چه پندار خامی کلا سيكفرون <تصفيق> عليهم هرگز چنین نیست به زودی معبودها منکر عبادت آنان خواهند شد بلکه بر ضدشان قیام میکنند. الم تر على أزا. آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنان را شدیدا تحریک کنند فلا دجل عم این من ع پس درباره آنان شتاب مکن ما؟ آنها و اعمالشان را به دقت شماره می کنیم در آن روز که پرهیزگاران را دست جمعی به سوی خداوند رحمان و پاداشهای او محشور می کنیم و نسوق المجرمین الى جهنم وردا و مجرمان را همچون شطران تشنکامی که به سوی آبگاه میروند به جهنم میرانیم لا یملکون من اتخذ عند الرحمن آنان هرگز مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارند وقالوا اتخذ الرحمن ولدا و گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است لقد جئتم ادّا. راستی مطلب زشت و زننده ای گفتید تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخرو الجبال هدا نزدیک است به خاطر این سخن آسمان ها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوه ها به شدت فروری ریزد از این رو که برای خداوند رحمان فرزندی قائل شدند و ما ان ولدا. در حالی که هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند این كل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بنده او گند خداوند همه آنها را احصا کرده با دقت شمرده است و كلهم اتيه يوم القيامه فردا رحمگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر میشوند ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم من رحماتدا مسلما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادهاند خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می‌دهد. فَإِنَّمَا يَسْعَنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّدَّ و ما فقط آن قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم. تا پرهیزگاران را به وسیله آن بشارت دهی و دشمنان سرسخت را با آن انذار کنی. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا چه بسیار اقوام بی ایمان و گنهکاری را که پیش از آنان حلاک کردیم آیا احدی از آنها را احساس می کنی؟ یا کمترین صدایی از آنان میشنوی؟